داستان دوم قربانی درخت ها تازه جوانه کرده بود شب پیش نم نمک باران آمده بود اما امروز هوا صاف و خندان بود خسرو روی تخت خوابیده بود بعد از سه ماه ناخوشی بستری برای اولین دفعه در اتاق را باز کرده بود صورتش صاف و چشمانش خمار و بینور می نمود. جلوی پنجره در حیات سه مرغ به زمین نک می زدند با پاهای خود خاک باخچه را پخش می کردند. یک مرغ و خروس لب حوز رفته آب می و پس از فرو دادن هر چک آب سرهایشان را به طرف هم چرخانیده به هم نگاه می کردند. من در کنار تختخواب خواب نشسته بودم. مدت ها بود که او کسی را نمی پذیرفت اما من همه هفته یکی دو مرتبه برای احوالپرسی پرسی به خانه اون می رفتم. با مادرش صحبت می کردم. امروز نمیدانم چطور شده بود که مرا به نزد خود پذیرفت. من گفتم خوب، حالست که بهتر شده است دیگر تا دو سه روز دیگر بلند می شوی. چون جوابی نداد من حرفم را دنبال کردم. من تا به چندین مرتبه احوالپرسی پرسی تو آمده بودم. همیشه از مادرت جویای سلامتی تو بودم. او گفت: «بله، میدانم." بعد قطتی به طرف حیات زد. مثل اینکه صحبت من او را خسته می کرد. یک گربه سیاه آمده بود لب حوز و با پنجش آب را تکان میداد و میخواست بدین وسیله ماهی را جلب کرده بعد آنها را برو باید. خسرو باز به طرف من غلطید و گفت چرا کتاب تازهی برای من نمی آوری؟ دکتر به من قدغن کرده است که کتاب بخوانم. این مرده جنون دارد تو هم نباید عجله داشته باشی صبر کن تا چند روز دیگر خوب خواهی شد خسرو سرفش گرفت و بعد از آنکه لگن را لب دهنش برد گفت تو یقین داری؟ بله من حتم دارم برای که من به این دکتر معتقد هستم از این گذشته از حال تو پیداست رنگ تو امروز صاف و صورتت بشاش است حسرو ابوهایش را توی هم کرد مثل اینکه فکر کردن برایش کار دشواری بود از کیت حالا راه معالجه سل را پیدا کردند من گفتم در مورد تو صحبت سل نیست تو سرما خورده ای و فقط به واسطه ناپریزی مبتلا به سینه درد مزمن شده ای. چی بی خود جر رو بحث کنیم؟ من حسدش را ندارم. باز رویش رو از من برگرداند. از استخوانهای های برجستی پیدا بود که مرگ قربانی تازهی پیدا کرده بود. اما این فکر در مغز من به هیچ وجه جا نمی گرفت. چطور می شود که خسرو بمیرد؟ چطور من باور بکنم؟ چقدر امید داشت؟ یک مرتبه فکر مرگ به شکل مهیبی در نظر من مجسم شد بالاخره سل فقط وسیله است ممکن است که خسرو در کوچه راه برود و پاراجوری او را بکشد این فکر زننده است بدنم لرزید خسرو به این جوانی با این همه فکر با این همه امید خسرو با این احساسات لطیف باید بمیرد تمام وجود این جوان نیست می شود هیچ اثری از آن باقی نمی ماند روحش که باقی میماند، ماند؟ بله این روح خوب پوزه است برای مردان سرکش تا اینکه احمق بمانند در حقیقت خسرو از وقتی که در بستر افتاده بود خیلی حالش تغییر کرده بود سابقا نزد دوستان چقدر بشاش بود مسخره گی میکرد همه را دست میانداخت همه کس او را آدم سطحی تصور میکرد اما آخر شبها ها وقتی که ما دو نفر پهلوی هم می نشستیم و آهسته گیلاس های شراب من را خالی میکردیم بدون اینکه با هم حرف بزنیم خیره به هم نگاه میکردیم و یک صفحه کاغذ و یا جعبه مقوایی سیگار خود را ریز ریز میکرد یا وقتی که شراب خورده بودیم و صفحات گرامافون را گوش می دادیم آره در این گونه مواقع می شد خسرو حقیقی را شناخت من میدانستم که او چیست آن وقت معلوم می شد که این آدم سطحی و بیفکر در واقع چقدر آشفته و آرزومند بود او مردم را لایق نمی دانست که با آنها حرفهای جدی بزند هر وقتی کسی از دوستان ما زن می او می گفت، بران کس زندار شده، سنگین و رنگین شده است، خوب از چند تا سنگ دیگر توی جیبهایش بریزد تا سنگین تر بشود. آخر شبها، وقتی که کسان دیگری دور ما نبودند، همین مطلب را جور دیگری می کرد. خیال بکن آدم زن بگیرد، مثلا چه کسی را؟ دختر فلان تاجر یا فلان رئیس اداره یا فلان وکیل را تو خیال میکنی که از این فاطمه شرخته بهتر هستند؟ خیال بکن که پس از غذا بخواهند آروغ بزنند و یا سر شب بخواهند صفحه آواز زینت را بشنوند. دیگر برای تمام عمر از زندگانیت سیر می اما با وجود این استهزا و با وجود این نفرت من می دانستم که چقدر خود او عاشق زن است. یک مرتبه در فرنگ با یک دختر معاشقه کرده بود. این معاشقه را هزار بار برای من به انواع و اقسام تعریف کرده بود. حالا این خسرو باید بمیرد. در حینی که من به آب سبز رنگ حوز خیره نگاه می کردم، دیدم یک ترجمه فرانسه شوپنهاور را از زیر بالش درآورد و کمی آن را ورق زد. وقتی که من از خسرو خداحافظی کردم و میخواستم از اتاقش بروم دیدم مادرش در اتاق مجاور کست کرده روی زمین نشسته و در حالی که با چادرش کیپ صورتش را گرفته است حرفهای ما را گوش میدد همین که من دید از جایش بلند شد من سلام کردم بعد مرا به اتاق دورتری برد و آنجا برای من درد دل کرد آقا خسرو فقط از شما حرف شنبی دارد یک کاری بکنید که قدری به های دکتر عمل بکند ما که هرچه بهش میگوییم اعتنایی نمی کند. من گفتم خانم با خسرو باید خیلی مدارا کرد او خیلی حساس است سعی بکنید که بیشتر به میده او رفتار کنید آقا اگر شما بدانید راستی اینجا هیچ کس کاری که مخالف میل او باشد نمی کند. در این خانه کسی لام تا کام حرف او را نمیزند اصلا هیچ کدام از ما را در اتاقش راه نمیدهد یک چیز دیگر که میخواستم خدمتتان عرض کنم قریب یک ماه آزگار است که یک دختر هر روز میآید اینجا من که نمیشناسمش اما خواهرانش میگویند که دختر خوبی است. به ما گفته که هر وقت آمد راهش ندهند آخر خوب نیست این بیچاره هم به هر زبانی که ما میخواییم این موضوع را حالیش بکنیم دست بردار نیست. هر روز صبح همین وقت میآید میاید احوال پرسی. شما یک کاری بکنید که خودش به او بگوید دیگر نیاید. من پرسیدم اسمش فروغ نیست. چرا؟ اما راستش را بخواهید ما دیگر خجالت میکشیم. من توی فکر رفتم و دیگر کمتر متوجه حرف های مادر خسرو شدم که پر از درد دل و شکوه از این اخلاق تودار پسرش بود و در زم نیز حسد می برد از اینکه خسرو این دختر چرا تا به حال با او صحبت نکرده است از حرفهایش اینطور استنبات می که اگر اختیار دست من بود تا حالا راه او را به روی این خانه به کلی بسته بودم اما حیف که خواهرانش. نمی گذاشتند وقتی که محبت این مادر را نسبت به خسرو در خیال خودم مجسم کردم یاد حرف خسرو افتادم که روزی به من گفت آیا میشود که مهر و محبت هم در دنیا اسباب دردسر آدم باشد بعد گفت دکتر دیروز میگفت که خسرو الحمدلله حالش بهتر شده است اگر خیلی پرهیز نکند و این مرض دو مرتبه در سال دیگر همین وقت عود کند از برای او بسیار خطرناک است آقا یک کاری بکنید که دیگر انقدر کتاب نخواند از پشت شیشه دیدم که خسرو از اتاقش بیرون آمده و روی پله توی حیات نشسته است مادرش سندلی راحت برای او برد من هم رفتم توی حیات پهلوی او به من گفت چه آفتاب خوبی مادرش گفت خسرو خاند میخواستی خودت را خوب بپوشانی خسرو رو به من کرد و گفت راستی بهار به همه کس جان تازه میبخشد این شمشادهای های خانه ما تا دیروز سیاه و بدرنگ بودند امروز یک مرتبه برگ آنها سبز و لطیف شده است حتی آنهایی هم که در پاییز سال پیش مردند حالا دو مرتبه زنده میشوند در حقیقت این حالت طبیعی خسرو بود افکار شاعرانه خود را میل داشت به طرز ساده و عوام فهمی بیان کند اما گاهی همین افکار را به طور مسخره می‌گفت الان صورتش یک حالت مهیبی به خود گرفته بود آیا از پشت در حرفهای ما را شنیده بود به نظرم میآید که این خسرو هم از مرگ می‌ترسد همین خسرو که تا به حال دو مرتبه به خودکشی اقدام کرده و نمرده بود پالتای پشمین را روی دوش انداخته بود سرش را لایه یخه های بلندان پنهان کرده و روی صندلی راحت در آفتاب نشسته بود مادرش وقتی که حس کرد که ما میخواهیم تنها باشیم رفت اما خسرو هیچ حرفی نمیزد هفت هشت گنجشک جلو پای ما در باغچه با هم بازی میکردند صدای جیگ‌جیک آنها و صدای دسته هاون این که روی گوشت نین کوبیده شده در هاون می‌خورد تنها صداهایی بودند که ما میشنیدیم. حسرو گفت: با مادرم راجب چی صحبت میکردی؟ حتما راجب فروخ. این دختر تا به حال هزار دفعه به من گفته است: الهی من قربان تو بروم. الهی من پیش مریت شدم برای اینکه من به او اظهار لطفی بکنم. حالا چطور است؟ امتحانی بکنیم. ببینیم میتواند خودش را قربانی بکند. چشمایی کشیده خسرو در این لحظه کمی گرد به نظر من آمد. مثل اینکه تا اندازه خشونت از آنها تراوش میکرد. مقصود تو را واقعا نمیفهمم. خسرو خندید و گفت. <تصفيق> مقصود اینکه روز عید قربان عوض گوسفند. فروغ را قربانی می کنیم شاید مردم حق دارند که میگویند گویند خسرو دیوانه شده است و برای آن که دیگر دنبال این مطلب کشیده نشود از او خداحافظی کردم و رفتم شاید یک ساعت و نیم به ظهر داشتیم وقتی که از خانه خسرو بیرون آمدم چند قدمی نگذشته زنی را دیدم که به سوی خانه او می رفت با وجودی که صورتش را کیپ گرفته بود، شناختم که فروخ بود. سر خیابان قدری صبر کردم، اما او نیامد، معلوم شد که خسرو را پذیرفته است. در باقی، این حرفهای آخر خسرو مرا به خیال انداخت. خسرو و من یک سال پیش، در یک میهمانی در منزل یک نفر از معروفین شهر با فروخ آشنا شدیم. آن روز فروخ، رخت پولکدار اننابی تنش بود. زولفایش را صاف شانه کرده بود و وسط پیشانی را چطری گذاشته بود. وقتی که صاحبخانه خسرو و من را به او و مادرش معرفی کرد فروغ خیلی سرخ شد. گوی آن روز اولین باری بود که در یک مجلس عمومی با مادرش بیچادر آمده بود. و نیز در همین ایام فروغ تصدیق کلاس یازده را گرفته و فارغ التحصیل تحصیل شده بود. سر نهار فروغ میان من و خسرو نشسته بود. ظاهرا پذیرایی ما دو نفر را به او محول کرده بودند. اما من از زیر چشم خوب میدیدم که فروغ خودش دست پاچه بود و مثل اینکه به کار بردن کارد و چنگال و قاشق بزرگ و کوچک و دستمال سفید که کله وار روی دوری ها گذاشته بودند برایش امری دشوار بود. خسرو در آن روز برعکس خیلی بشاش به نظر میآمد. آمد بقیده ای من باز هدفی برای مسغرگی های یک ماه دیگرش پیدا کرده بود در حینی که فروغ به کلی خجلت زده نشسته بود و خسرو از هر طرف با همه کس از و جواب میکرد، یک مرتبه خسرو رو کرد به من و گفت من و تو باید خیلی خوش باشیم از اینکه که خانم را همسایه ما کردند فروغ در مقابل برای آنکه خیلی تعارف کرده باشد گفت برعکس من مفتخرم از اینکه با اشخاص بزرگی همسایه شدم بعد از نهار من و خسرو نشسته بودیم و شطرنج بازی می کردیم. بعضی از مهمان در اتاقهای دیگر چای می و یا صحبت می کردند. شاید بیشتر صحبت های آنها راجع به خسرو بود برای آن در همان ایام خسرو کتاب معروفش را نوشته بود همان کتابی که آخرین اثر او به شمار می رود. مادر فروغ آن طرف نشسته بود و صاحبخانه دخترش را نزد ما آورد. او کتاب خسرو را در دست گرفته بود و میخوااند یک مرتبه برای که اظهار فضل کرده و سوالی که شایسته یک نفر دختر تحصیل کرده دیپلممه کلاس یازده باشد کرده باشد پرسید؟ آقا ببخشید، اینجا مرگوم فرمودید؟ نور چراک که از زیر چتر سرخ رنگان تراوش میکرد به اتاق یک حالت مرموزی میداد مقصود چیست؟ خسرو اسب را برداشته بود و میخواست با آن حرکت بکند ولی چند ثانیهی با لبخند تعمل کرد و گفت مقصود این است که که خانم اظهار لطفی بکنند و به ما هم چایی بدهند فروغ بیچاره از این جواب نامناسب کمی سرخ شد و رفت بعد خسرو به من گفت دیدی؟ نصف توست بعدها فروغ و مادرش را در کافه لالزار گاهی با چادر و بیچادر می دیدیم مادر فروغ روی هم رفته بیمیل نبود دخترش را جابی اندازد خسرو خوشگل و از خانواده خوب بود حالا او کار و پول نداشت این مهم نبود برای آنکه آنها احتیاج به پول نداشتند فقط چیزی که او را دلنگران کرده بود این بود که خسرو در خانه خیلی بد اخلاقی می کرد. این مطلب را از راه زنانه شنیده بود آن هم تازه چیزی نبود ممکن است با زنش اخلاق خوبی داشته باشد بعدها هم گاهی فروغ که محل ما را میدانست تنها به کافلال زار میآمد و در این گونه مواقع برای ساعت هفت تا هشت خسرو او را تا خانه همراهی می کرد. اما بعضی اوقات هم میشد که خسرو در صورت صورتی حدس میزد که ممکن است فروغ بیاید قبلا میرفت و یا اینکه مرا هم با خود میبرد این بود روابط من و خسرو با فروغ تا آنکه ناخوشی او پیش آمد در این مدت خسرو برای اولین دفعه فروغ را میبیند و فروغ موقع رفتن به خانه او از من رو میپوشاند ظاهرا به مادرش هم نمیگوید که آنجا میرود. فروغ خیلی خسرو را دوست دارد. از همه مهمتر حرفی بود که امروز خسرو درباره فروغ گفته بود. آیا مقصودش چه بوده است؟ فکر‌های پراکنده‌ای که به هیچ وجه نمیتوانستم وسل و ربطی بر آنها پیدا کنم برای من دست میداد. تا دو سه روز به خانه خسرو نرفتم اما دلم شور میزد. یک روز از در خانه فروغ رد می شدم اختیار در زدم. نوکر گفت خانومها خانه نیستند. به خانه که برگشتم دیدم خسرو کاغذی نوشته که من هرچه زودتر خودم را به او برسانم. خسرو با پوستین روی صندلی راحتی توی آفتاب در حیات نشسته بود. شاخه های درخت زردالو که تازه جوانه های اننا بیرنگی زده بود روی سرش سایه انداخته بودند. خواهر کوچکترش بهلوی او نشسته بود و برایش نارنگی پوست میکند خسرو گفت چه خوش آمدی صفا آوردی ای آقا صفا از شماست لبخندی زد بعد خاموش شد این لبخند یکی از صفات مخصوص او بود من دلم شور میزد اما او از آنجا که عادت داشت همه چیز را با خون سردی تلقی میکرد. خواهرش خنده کرد و رفت. بفرمایید نارنگی میل کنید. خدا سایه شما را از سر ما کم نکند. بارک الله تعریفی شده است. من دیگر جواب مناسبی پیدا نکردم. خسرو هم صورت جدی به خود گرفت. من پرسیدم با من چه داشتی؟ الان که به خانه رفتم کاغذ تو را دیدم کاری نداشتم میخواستم به عروسی خودم با تو صحبت کنم من هراسان پرسیدم تو عروسی با کی با فروغ با فروغ ده تو خیلی تعجب میکنی چه همیت دارد مگر من نباید زندار بشم؟ با چشمایی کشیده و صورت مسلسی شکلش خنده قریبی می میکرد. من به صندلی راحت که داده پایم را روی هم انداختم و گفتم مبارک است. اما پهلوی خودم فکرهای دیگری کردم. آخر مگر تو ناخوش نیستی، تو سل داری. فروغ بیچاره مگر چه گناهی کرده که با تو آشنا شده است. خسرو از جلوی چشمم محف شده. گونه‌های های برچسته اصطخان بندی ای به جای خسرو روی صندلی هدف چشم های من شد. فروغ دست های نازک و لطیفش را روی این اصطخان ها خسرو صندلی خود را نزدیک تر به من آورد و گفت حس می کنم که تو کمی تعجب می کنی و این حرکت مرا خشن می دانی. هیچ میفهمی که من چه می کشم؟ هیچ می که من چگونه می سوزم؟ من در بحباهی جوانی باید بمیرم. برای چه؟ فقط برای آن که از دیگران بهترم. فقط برای آن که من بیشتر چیز میبینم و میفهمم. از آن چه دیگران لذت میبرند، من زجر میکشم. گذشته از این. از کجا معلوم است که من میمیرم. شاید بهتر شدم. شاید عروسی حال مرا بهتر کرد. اصلا خود شما به من میگویید که من سل ندارم، من ناخوشیم تمام شده است، از کجا معلوم است که فروغ با من بدبخت میشود؟ شاید خوشبخت شد. مدتی حرف زد و من خیره به او نگاه میکردم. حرف آخرش این بود، برای چه من باید از خود دفاع کنم؟ آن قبعی که مرا را مسلول کرد و میخواهد مرا را بکشد، هیچ از خودش دفاع میکند؟ من هم غبهی هستم و باید میدانی برای بال و زدن پیدا کنم حرفهای او که من نکرد اما راست میگفت حرفهایش به دل من کارگر شد در هر صورت حیبتی که عروسی او در وهله اول در من تولید کرد تدریجاً برطرف شد اما از جای دیگر در بودم می ترسیدم که تمام نقشهای خودش را برای من تعریف نکرده باشد. در هر حال با او موافقت کردم. قبلا هم با فروخ صحبت کرده بود. مادر نیز از این عروسی خوشحالی میکرد و حاضر شده بود که همه نوع کمک کند. دکتر هم عروسی را تصویب کرده منتها با احتیاط و گفته بود ممکن است برای خسرو خیلی خوب باشد. شاید هم برای هر دو خطرناک باشد. خسرو و نقشه خود را اینطور برای من بیان کرد. تصمیم گرفتم ملکی را که در شهریار به من ارث رسیده است بفروشم. تقریبا ده تا دوازده هزار تومان می شود. با این پول در گیلان شاید در لاهیجان و یا در نزدیکی های دریات که زمینی می خرم و در همان جا ای می سازم و مشغول رایتی می شوم. اما خیال دارم که در همان خانه جدید عروسی بکنم. مرا مأمور کرده بود که با مادر فروغ داخل مذاکره بشوند. انجام همه این کارها قریب هشت ماه و نیم طول کشید. مادر فروغ اگرچه ظاهرا کمی دلنگران بود از اینکه خسرو ناخوش است ولی خود او روی هم رفته این وصلت را آرزو می کرد. مادر خسرو سر اینکه پسرش خوشحالی می کند و گاهی هم می شود که با او هم می خندد خیلی بشاش بود. حق هم داشت. عروسی پسران و دختران برای پدران و مادران یاد بود زنده ای از عروسی خودشان است. در رودسر، در ساحل دریا خانه ییلاقی که روبه دریا دارای ایوان پهنی بود و جلو آن یک سر شیش کارگزارده بودند ساخته شد. سما تابستان خص و من مشغول ساختمان آن بودیم. موقتا همان خانه خریده شد. خسرو عقیده داشت که زمین را بعدها ها وقتی که با اهل محل آشنا شدیم، خواهیم خرید. در ساختمان آن منتهای دقت به عمل آمد، اما دستورهای خسرو طوری بود که خانه را مهیب جلوه می‌داد. اسباب‌های خانه را از بهترین مغازه‌ها با بهترین سلیقه خریدیم. من می‌گویم بهترین سلیقه، اما سلیقه من نبود. مبل نرم، غالی های خوش نگار، پنجره پوش های حریر، آویز ها و غندیل های برنجی کار چراغ که از چوب سنگین درست شده بود. همه اینها اگرچه اگر قشنگ بود، اما خسرو رنگ های قریبی انتخاب می‌کرد. بیش از دو هزار تومان برای اساسی اتاق خواب که خسروان را هجلگاه نام بود خرج شد. رنگ تمام اساسه این اتاق طلایی بود اما باز میگویم گویم من این نبود روز هجده بهمن چون در تقویم نوشته بود که در این روز زناشویی مبارک است عروس و داماد را در منزل مادر فروغ عقد کردند همان روز فروغ و خسرو به سوی رودسر حرکت کردند پس فردایان شب مادر خسرو و مادر فروغ با من در یک اتومبیل هدسن از لاهیجان گذشتیم. قرار این بود که عروس و داماد طرف اصلی وارد خانه جدید شده و ما صبح آنجا باشیم. باد شدیدی در راه می‌وزید به طوری که برف پاره ها را از روی درختان در هوا پراکنده می‌کرد. نعرههایی که معلوم نبود از حلقوم باد بیرون می‌آید و یا اینکه طبیعت از خود میدهد تأثیر غریبی در گوش شنونده ایجاد می کرد. مادر فروغ و مادر خسرو می خندیدند اما من منتظر بلیه ای بودم من دلم شور می اتومبیل از روی جاده پر از برف و گل می و هر لحظه ما را به سوی آن خانه که امروز به نظر من خانه وحشتناکی شده بود نزدیک تر می کرد ساعت نهانیم اتومبیل ما دم در خانه نگاه داشت، در باز بود، چطور کلفت و نوکر نبودند، در سرسرای خانه برخلاف انتظار هیچ کس پیش فاز ما نیامد، هنوز چراغ دیشب می دود میکرد. در یک چون این روزی که باید عروسی جشن گرفته شود، روا نبود که این خانه اینطور خاموش باشد، از پلده ها بالا رفتیم در دالان طبقه اول یک نفر ارمنی که ویولونش را در دستش گرفته بود و یغش باز بود روی نیمکتی خوابیده بود و خورخور خور می کرد. در تالار بزرگ چند تا بطری و گیلاس روی زمین افتاده بود بعضی از چراغها هنوز روشن بودند از مفری که ظاهرا معلوم نبود باد سخت و سردی در تمام خانه می به طوری که تمام پردهها در تلاتون بود و قندیل ها را تکان میداد در هر لحظه یکی از درها باز میشد و با صدای مهیبی به دیوارها میخورد. من متوجه زنه نشدم چون خانه را می شناختم اول به اتاق خواب رفتم لواف تخت در هم و بر هم بودند اما کسی آنجا نبود واد از ایوان می آمد. با عجله به دانجا رفتم که پنجره را ببندم باد سختی به داخل امارت میوزید و برف ها در فضایان میرخسیدند از پشت پنجره دریا پیدا بود آب کف کرده بود امواج به شدت به دیوار خانه میخورد مثل اینکه می‌خواهد میخواهد اساس این خانه را سرنگون کند نزدیک پنجره فروغ با پیراهن سفید و بلندی با موهای آشفته روی زمین افتاده بود من گمان کردم که مرده است هیچ حرکت نمی کرد. بدنش یخ زده بود و پاهایش لخت بود وقتی که نزدیکش رفتم و او را از زمین بلند کردم و به صورتش نگاه کردم با چشمش به دریا اشاره کرد یک سال بعد فروخ هم به مرض سل مرد او قربانی همه شد این قربانی او شد